بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دعای ششوم دعای هنگام صبح و شب خلاص ششوم اللهم فلک الحمد على ما فلقت لنا من الاصباح ومتعتنا به من ذوق النهار وبصرتنا من مطالب الاوقات ابقيتنا به من توارق الافات خدا یا تو را سپاس که صبحها که صبح را برای ما شکافتی و ما را از روشنی روز بهرهمند ساختید و راه طلب روزی را به ما نمودی و ما را از آفات شبانه حفظ کردی اسبحنا واسبحت الاشیاء کلها به جملتها لکه سماعها و ارضها و ما بسست فی کل واحد منهما ساکنه و متحرک بود و مقیمه و شاخص بود و ما علا فی الهوا و ما تحت سرا ما و همه چیز صبح کردیم در حالی که همه مرک تویم آسمان و زمین و آنچه در این دو پراکنده ساختی ساکن یا متحرک ایستاده یا رونده و هرچه در هوا برآمده و زیر خاد به است. استهنافی قدرتت که یخوینا ملکوت و سلطانت تو منا و تو نتصرف عن امرت و نتقلب في تدبيرك همه ما در پنجه قدرت تویم و مراد و قدرت تو ما را فرو گرفته و مشیت تو ما را به هم پیوسته است دست در هر کاری داریم به فرمان تو داریم تصرف ما به تدبیر توست. لیصل نامل ره الا ما قداییتا ولا منل خیر الا ما اییتا هیچ کار نتوانیم مگر فرمان تو باشد و هیچ خیر به ما نرسد مگر تو بخشنده باشید. فراز ب بخونیم در سر و هازو یوم حادثون جدید و هو علینا شاهد اتید این احسننا و دهنا به حمد و این اسعنا فارق فارغنا به ذمه این روزی از نو و تازه و گواهی و گواهی آماده بر اعمال اگر نیکوکار باشی ستایش کن ستایش کنان ما را بدرود گویند و اگر بد کنیم بازم و نکوهش از ما جدا کرد بسم الله الرحمن الرحیم و به این استا این و هو و موفق و ما این <تصفيق> سمه سلات و السلام علا اشرف خلقه و مملده سلاته حبیب قلوب نا و طبیب نفوس نا ابل القاسم محمد الله علیه و سلام و علیه و عالم حمام عجیز و علیه و علیه و الله لالعلمان الاملین راسی ما امامنا و قائدنا امام سجاس اغامونا علیه در این فرازهای بلند دعای ششم از عدیه صحیفه مبارکه سجادیه ما رو آشنا کنن با آنچه هست و خدا خلق کرده برای رشد و تعالی ما برای بود ما به نحوه بهترین هستی در این عالم و این که چه نیازی در این دنیا ما داریم و باید از چه کسی این نیازها رو درخواست کنیم و راه به حاجت رسیدن برای تأمین این نیازها همه رو در این کتاب بیان کرده و خصوصا در این دعا اختصاص داده دعا رو به همه شب و روز ساعت شب رو چگونه انسان میتونه به بهترین نه حق این نعمت شبانگاهی رو به جا بیاره ساعت روز و از صبح تا اول شب رو که به ظاهر ساعت بیداری هست و فعالیت باید چگونه سپری کنیم و در راستای رب نیازهامون از این نعمت روز چطور باید استفاده کنیم این رو در این دعا فرمایش کرده کتاب سعیفه سجادی هست کردم کتاب دعاست اما در واقع نشاندهنده این هست عبارات صحیفه که ما اگر نیاز نیازمندیم و صاحب عقلیم برای رفع نیازمون از عقلمون باید کمک بگیریم اما اون مسبب الاسباب اون کسی که همین این عالم رو خرق کرده و قدرت در درید اوست و نشانه حد قدرتش هم بود این عالم و وجود این عالم با این همه نعمت های بزرگ این همه نظم و ترتیب و دقتی که در این خلقت هست و علاوه بر خلقت تداومی که این عالم داره مدت های مدیدی پیش این مخلوقات کنونی رو خلق کرده خدای متعال ولی همچنان برپاست بهش امیده که نیروی زیادی پشت این جریان هست یا ها ساختمون های خوب می سازن امکانات خوبم ابتدا فراهم میکنن برای این ساختمون اما تدرومش گاهی پرواز و نشیب داره زندگی ها طرف پر کسی میشه ببینید دیگه نمیتونونه اادام بده. تأمینان گهداریش مثلا براش سخت میشه گاهی به هم میخوره قضیه میفروشد مثلا مین یه منزل کوچیک که مناسب. حوانشون مثلا میخرن خدای متعال این عالم به این عظمت رو خلق کرده و از بعد از خلقتش به همین حیمنه و شوکت و والایی که عالم داره حبسش کرده این نشون میده قدرت بسیار زیادی داره این خدای با این عظمت که خالق متعال هست فرمایشش این هست که من خودم خرق کردم همه موجودات عالم تحت نظر خودم همه موجودات هم از اونهایی که جامعه هستن و به ظاهر مثلا جاندار نیستن اما هستن و همه اون جاندارانی که هم از حیوان و غیر حیوان از جنه، ملایکه اینا همه تحت خدمت هستن در مورد از جنه داره که یا مؤمنن یا کافرن اونایشون که کافرن دیگه مؤمن نمیشن هستن علت اونایی که مؤمنن همه مقلد و همه پا جفتن سعیشون بر اینه که از دایره مثلا تاعت بیرون نرین علتشم اینه هست که چون غذا نمیخورن عمرشون طولانیه خیلی چیزا رو دیدن زمان پیامبر رو دیدن زمان مثلا قدیر رو دیدن حق و باطل رو حس کردن رویت کردن از جاشون تکون نمیخورن معتقد و مطیع هستن یه تعداد از موجودات اسمشون انسانه اینها خیلی زیر بار نمیرن اکثر هم لا یقلون. اکثر هم لا مثلا یشکرون شکر عملی ندارن تابع نیستن همه حرف خدا به وسیله انبیاء و ارسیه گرام این بزرگواران این هستش که شما تعداد کمی از انسان ها که در مقابل دیگر موجوداتی که خلق کرده چیزی نیستیم اما خب کار به دست ما هاست ما ها اشرف مخلوقات هستیم ما رو میخواد هدایت کنه که با اختیار بیاریم پای کار در این کتاب صحیفه سجادیه علاوه بر قرآن و کتب روایی دیگه حضرت یه راهکاری رو داره به ما یاد میده که تقوا رو بتونیم بدون مانع پشت سر بگذاریم همه دوست با تقوا باشن چون تقوا کار سختی نیست تقوه گناه نکردن نیست تقوه یعنی پرهیز از گناه مقدمه و زمینه گناه رو نچیدنه این راحت تر از گناه نکردنه اما خب موانعی داره های ما، امیال ما، حوث و هوای ما ما نعظیم میشه که این یه زده رو انجام بدیم مثلا یه موبایل دست نگرفتن و تو با نتشم هم این برامر نرفتن این به ظاهر کاری نداره اما دل من نمیذاره میل من نمیذاره میگی چرا این کار اشتباره که اینقدر یعنی مکافات باید بکشیم نمیدونم دلم خواست مثلا یه لحظه هوا و حوث و اینا امام علی را کاری رو داره یاد میده به ما که این موانع تقوا موانع خوب شدن رو نه از جلوی پایمون برداریم راهش چیه درخواست از خدا نخواست حقایق رو چون حاکمان وقت نمیذاشتن داشتن هزرات برای گفتن داشته باشن منبری برای بیان حقایق داشته باشن وقت اومده در منزل خودش با در به دعا گفته نه این دعا راهکار بسیار نافعه خیلی مشبر کنه از دعا فرمودن مخل عباده مغز و بون عبادت دعاست اگر انسان با دعا اون بگیره این دعا کارها میکنه چون صاحب دعا خدای متعال از او که قدرت محضه، حکمت محضه و علاوه بر این صفات مهربان ترینه، رحمان رکیمه ازش ترخواست میکنیم آجدانه که خدایا این حاجات ما رو برطرف کن داره یاد میده به ما که چطور نیاز رو از در خانه خدا تغذار کنیم و به نتیجه برسیم این یه نکته که خوب تا خیلی موثره نکته دیگه این که این دعای معصر و خیلی کارساز خوب نیست فقط واجبه ادعونی از تجبله کن میگه عالم به دو شکل هست بودش یه بودش سنت منه که تکوینیاته همه رو خلق کردم هر هرچه لازمه موجودیت توی انسان در روی زمین هست رو من قبل از خلقتت خلق کردم نمیخواد درخواست کنی اونا رو اونا که هست همه زمین و پهنه همه موجوداتی که لازمه بود تو در این عالم هست رو قبل از اینکه پا به زمین بگذاری من خلق کردم همه یه چیزهای لازمی زندگی تر نیاز زندگی انسانی و زندگی متعالی هست اونا را اگه بخوای من میدم اگر نیاز دارید جای دیگه میخوایی برید برو جای دیگه همه برامه های دین و دینداری و اسلام و مذهب تشیع و اینها بنابرای همینه که میگه راه برطرف کردن نیازهای اختیاریت رو ما از دیده دین این میدونین اینجوری عمل کن نیازات برطرف میشه اگر دیندار نباشی خب برو نیازهای خودت که هست در جای خودت از هر مسیری که میخوای اگه میتونی برود مثلا برطرف کن میگه اگر مثلا در خونتون نیام چی میشه و شما عقل و اختیار دادی خودت هم تو خالقیت ما هیچ حرفی نداریم به هر کافری بگی که کی خلقت کرده خب حتما یه موجود قوی این تیز و سنتیز و آنتیز و چیزایی که کومونیستان میگفتن حرف بود خیلی هم زود پاشیده شد این حرفا اما در خالقیت هیچ بحثی نیست همه کفار میگن خالق نیروی عظیمی حالا اسمش الله یا خداست یا هر اسمی ما تو اون بحثی نداریم بحثمون چنینی که مدیریت به دست خودمون باشه خودمون اختیار داریم چجور زندگی کنیم روش زندگیمون منش حاکمیتیمون منش کارهای فردی و اجتماعیمون دست خودمون باشه خدا میگه نه من خلقتون کردم هم دست من باید باشه دستور عملم هم همون دستور عمل دینه اگر دین رو رعایت نکنیم میگه چی میشه خودمون مثلا فکر کنیم اندیشه کنیم گمان زنی ها نمیدونم یه براندازی می کنیم می بینیم برای اینکه یک نیازی برطرف بشه از آمارهای استفاده می و میریم میریم تا برسیم به یه نظریه بعد یه فرضیه بنابر فرضیه امتحان می اگه اگر جواب داد عمل می اگه جواب نداد دوباره یه برامه دیگه رو دنبال می کنیم تا برسه به فرضیه مطمئن و اینکه عیبی ای نجده این که عیبی ای نجده فهن نلهو معی زنگا. فقط نتیجه اینه که زندگیتون تیره و تار میشه به حیرانی و تهیری میگم خب این همه غربی ها متناسب با تفکر بی گفتن دین موضوع الدا مرده جهدش هم اینه که خیلی معذرت میخوام پایه بر اومایه تفکری غربی ها به اینجا رسیده که بعد از نمی‌دونم مدرنیسم و پوست مدرنیسم و پوست پوست مدرنیسم و بعد اینکه که اصلا بنای مدرنیسم و این هم هیچ پایده ای نداره بنابرای دلخواه مردم بعد عمل کرد هر گروهی با بوم و سیستم و آب و هوایی که داره برای خودش برامریزی کنه اون بهترینه مثل مثلا جاکدریزا و اینها اومدن اینجوری میگن بنای کلونی حاکمیت تمدن غربی هم همینه که نظم در بین نظمیه میگه میگنی چه؟ میگه یعنی این که هر کسی تو شهر خودش در منطقه آب و هوایی خودش بوم و سنت و پرهنگ خودش هر که میخواد زندگی کنه حاکم هم مطی خواسته مردم باید باشه این بهترینه خب نهایت تمدن غرب اینجا رسیدی که سیستم نمیتونه به چرخونه چون هر سیستمی رو خودشون زدن دیدم به خرابی انجام میده رسیدم به این نقطه که باید اونجور که دلشون مردم میخواد زندگی کنن حاکم من هم باید همون رو زمینه هاشو پراهم کنه خب این بغیر از حیرانی و زرگردانیه این همه هی تفکرات مختلف از هگل و دکارت و اینها گرفته تا بیاد نیچه پوچگرا تا بیاد الان که مثلا بنابرای ساختار شکنی و نظم در بی نظمی اسمشه کذاشتن این عین حیرانی هست عین ندونم کاری هست خدا همین رو می فرمد. می فرمد اگر یاد من و یاد عملی من در کارتون نباشه شما انسان ها به تیرگی و حیرانی و گرفتاری و بدبختی میفتین و این نتیجه عمل نکردنه به دستور خدا در دنیا اون که اگه باشه میگن شاید باشه نمیتونید بگید حتما نیست که شاید قیامت اون بر. شاید باشه همین احتمال شاید در قیامت خبری باشد برای اغلاه اونهایی که عقل سلیم دارن و معمولی زندگی میکنن عقلشون هم معمولیه احتمال خطر باید ازش پیشگیری بشه خطر رو باید پیشگیری کرد ازش همین که احتمالی هست اونجا قبر و قیامت رو اینا باشه باید یه ای براش باز کرد دین میگه دریشهش اینه که گناه نکنید وقت توضیح داده گناه یعنی چی در حوزه مر... مثلا فردیش چیه در حوزه اجتماعی چی کنه و عمل کرد که مخالفت فرمان نشه این رو میگه اگر عمل کنید نهایتش در اونجا ازلیفت الجنت و لل متقین که پرهیز میکنن از عدم مخالفت و دوری میکنن از مخالفت اینها بهش برای همین ساخته شده اصلا این ها خب خوبه اگه احتمال جهنم باشه آدم همین مسیر رو بره اگر یه ذره آدم از خودش دست برداره از هوا و حوث و دلش دست برداره در و دیوار آیت خدا میشه در و دیوار انسان رو به سنت سوی خدا و دین و دین مداری میرسونه اما اگه با هواش بخواد زندگی کنه در و دیوار میگه میل اون چه دل میگه عمل کن هر نگاه میکنه همش همهش و دنیا و لذت رو نبینم از این هر پاس میگه اصلا آدم یه آقا دکتری میگته اصلا من وقتی از برودگاه تهران ماشین میاردم مثلا تو خیام فرشته منزلمون من رو که میبینم روحم هم نشاد پیدا میکنه نگاه میکنم به این دار و درخی ساخت میکنه شیک این آدم مثلا بروز نو نو پوش نو سوارشو نو مثلا ساکینشو همیشیشون نو و با ترابطه آدم نشاط پیدا میکنه براس میگه اگه به دل باشی اینا خیلی نشاط آوره اما اگه دل رو به اندازه و متعدل به جواب بدی دین نمیگه دل رو بذار کنار لحش کن. اشتباز نه میگه من میل رو خلق کردم خدای متعال میگه من درست کردم تو رو و این میلم در دران تو و در تینت و طبیعت تو قرار دادم اینو متعادل ازش استفاده کن افراد نکن تفرید نداشته باشه امام سجا سرمون علیه در این دعایششون راه و رسم چگونه شب رو گزارندن و چگونه روز رو گزارندن رو پرمانش کرده و در قالب دعا از خدای متعال میخواد که این شب و روز من رو و این دو هنگام بود من رو که هیچ فراری هم ندارم نمیتونم بگم نه من شب میخوام زندگی کنم نه روز میخوام زندگی کنم این باید زندگی کن زندگی درست رو میپهمد اینجور هست در عباراتی که برادر عزیزمون گراهت کردن در این چند بند اقایق از مطرح کرده یکی اینکه همه مطالب اقباط رو خودش ردیف کرده خیلی مهمه ما فعالیت میکنیم کار و کسب و کوشش و تلاش میکنیم آزه همت بلن میشه مثلا بعد نماز میره بیا سرکشی میکنه اون موقع که ما تازه زالا زادن گیجیم که بیدارشیم یا بیدار نشیم کاراشی کرده میاد سبونه بخوره فعالیتشون رو میکنن تا شب اما میفرمد این روز رو من گذاشتم برای فعالیت برای اینکه که رزق روزیتون رو در بیارید، معیشتی دون رو دنبال کنید منطقه این رو بدانید همه مطالب الاغباد دست منه خیلی مهمه یعنی من معمول به این هستم که فعالیت کنم اون میگار که راه برایم باز فعالیت کنم در فعالیت من نشات خودم رو داشته باشم. اما اون چیزی که قرار هست به فایده به دست من برسه دست من نیست فقط تا اینجور نیست که دو دستا چهارتا بشه بگه من فعالیت همون کردم باید برسه باید دست خداست اون حد و حدود دست خداست میگیم خب اگه ما این رو ه... یادمون نباشه که همه چیز دست خداست کار کنیم چی میشه؟ گاهی افراد رو می‌کنیم. میکنیم گاهی در برخوردها بدون جهت یا بی جهت اثبانی میشی بی جهاد بی تفاوت میشی این افرات و تنفریت ها تو کار این نبود نظم دینی در کار این خودش بدترین برنامه هست ولی اگر بدونی که بالادستی دستی حقوق می رسونه می من کار رو انجام می دن می خب تو 800 کار میکنی شاید این جنسی که تولید میکنی صاحب کارخونه نتونه بفروشه بخصودی تو رو آخر ماه نمی ده نمی نده آخر ماه من و رو بهم بده میده قرض بکنه میرسونه اینجونه دیگه وقتی آدم ببینید تحت فرمان یک بالا دستی هست به نام کارپرما بگو جنس ساختمون گروم بشه یا نشه من کارگرم من معمارم من پولمون میگیرم پول نگیرم خب کار نمیکنم اون مجبوره برسونه به هم اگر بدون این بالا دستمون خدای متعاله دیگه خیلی قصده نمیخوریم چون میگه قاید خطباً گذاشته ما معلوم مقصومه یعنی هم مشخص هم قسمت شده هست هیچ کس نمیتونه کمش کنه هیچ کس نمیتونه زیادش کنه آرام کارت انجام بده میگه آخر یعنی واقعاً اینجوری میشه می ها امتحان کن امتحان کن خیلی توشه هست نخور با ناراحتی نهی سرزن وچه تازه اونا همه کارار کردن که آقا داره میاد یه چایی بخوره و با هم باشیم ما مثلا یه خستگی ما دربره خستگی او دربره اون تازه میاد اوستن غمتریا با یه حیبتی چیه مثلا چه که هم اونجور شده سترسا میدونه 600 تا برمان برای خودش پیش میاره تو خیال خودش تو فکر خودش بعضیش واقعیه بعضیش خیالیه میفرمد همه قوتو همه اون چیزی که قراره در روز به عنوان متا به دست تو برسه دست خودمه این نکته خیلی مهمه که در بند ششم فرمایش میکنه در بند هفتم میفرماید همه اونچه در صبح و روز هر برخورد و سکونی که پیش میاد براتون هر آمد رفتی که میشه یکی میاد با قیافیق مثلا خوب و سلامت گرم و اینها برخورد میکنه آدم نشات پیدا میکنه اول صبح یه وقتا میرید به یکی سلام میکنی جوابت که نمیدهید اینیم میزنه میرید آدمون به هم تا مثلا ساعتها میگه همه این رو دست خداست ها به ها لک به دست توی لذا باید خدا آدم توضیح کنه بسم الله الرحمن الرحیم بیاد بیرون بید خدای من دنبال این هستم که یه هدف دیگی رو دنبال کنم دنبال این نیستم پول رو پول بگذارم دنبال این نیستم فقط رزق خودم رو به دست بیارم و مثلا برم تو خونه. من قرار هستش که خلق شدم به محبت تو برسم علا سبیل محبته منو خلق کردی من قرار یه ارداشت بالایی رو از تهی کردن این صبح شب و شب صبح رو به دنبال داشته باشم که به تو محبت پیدا کنم فرمایش کردی که روز رو خلق کردم برای که فعالیت کنیم یا علی من فعالیت میکنم شب رو برای لذت و آرامش خیلی دارم هم دست خودت من همم اینه که بتونم از این گذر زمان و گذر عمرم متصل به تو بشم اون مقصوده مقصوده من فقط این نیست که مثلا میگه بیا بریم جایی میگه من ماشینم خرابه خب درستش کن بریم بیا مسای خرچ داره بی بی بود هرمد آقا ماشین داره دو نفر اونام تو نفر مامی من با دو ما جای نمیام هی بابا بی بی. نه تو کترم نمیده میگه بعد خودم ماشین داشته باشم بیتره کنم بسرم یه مدر چی چی میخوام بخرم بیا حالا بریم سنم بخ میگذره زمیست و میاد دیگه نمیشه سفر اونا منتظرن تو خیال و توهم و این یادمون نیست که کجا قراره بریم یادمون نیست که الاسوید محبته رو خدا خلق کرده که بست راه به کسب محبت باری بگذرانیم نه به این حرفا این حرفا یعنی بازموندن و خمود موندن و قفلت خدا را حسن میدیم به حق خودش و همی ملایکه مقربین انویا اعظام خاصه خاتم انویا اشرف مخلوقات و حسیه های و اون بزرگوار عیمه اتخار علیه همون و السلام توفیر پیدا کنیم در بودمون تو این دنیا شب و روزمون رو همراه با تقوا و پرهیز از گناه بگذرونیم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد الله الله. الله. الله. الله.